میگن که گاهی اوقات فکر میکنم نسبت به آینده که عزیزانم رو از دست میدم و نبودن خودم احساس یعص و نخوش آینده من دست میده برای مقابله با این حالت طبیعی همه همینطور هم بلی قاعده برای این هست که ما الان حیات داریم زنده هستیم بعد از این پرسط استفاده کرد. پرسطی که خیلی هم طولانی نیست اون طرف هم که میرین حیات هست همین حیاتی که اینجا داریم اونجا هم داریم و همه دوربر همه هم, هم دیگر میبینن اونایی هم که خدای نکرده بین ما هستن الان از بدان و ظالمین و غیر خدایی هستن اونجا میریم اصلا یادشون نیستیم خدای نسیان پراموشی میده که اذیت نشه انسان